کفار قسم اگر کسی قسم خورد و قسم را شکست اگر کاری که قسم خورده بود یعنی جائز بود انجام دادنش نجائز بود بعد آن را شکست گناهکار شده گناه کرده قسم خورده بس شکستنش هم گناه هست کفاره ایش این است که اول ها در این زمان ما به ده مسکین ناهار و شام بدهد اگر توانایی آن را ندارد بعد سی روز روزه پی در پی بگیرد پس اول دادن پول هست حالا حساب پول اگر حساب کنیم تقریباً 20 کیلو گندم 20 کیلو گندم را قیمت بگیرد و بین ده نفر فقیر تقسیم کند اگر پول نداشت بعد این است که روز بگیرد سی روز پی در پی بگیرد حالا شرط روز این است که تا روز آخر روز گرفتن پول هم نداشته باشد یعنی اگر یاران وارز شدن روزها باطل بعد پول پرداخت کنند پس زمانی بگیرد که پول ندارد سی روز روز پیدر پی ضروری هست باید پیدر پی باشه این سی روز اگر خانمی دو روز گرفت روز پیدر پی و معذور شد و عادتهای ماهیانه شروع شدند اینها باطل میشن، باید دوباره از اول سی روز بگیرد پس در روز سی روز پیدر پی ضروری هست اما زنا زنا جو فواهش زیشت و خان منصود و فتنی است که جامعه را بفصاد می کشد بدترین گناه است گناه های بزرگیان خداوند متعالمی فرمائد و لا تقربو الزنا نزدیک زنا هم نروید یعنی اسبابی که انسانو بزنا می کشند هم استفاده نکوید. اسباب آن دست دستدن و اسباب زنا رو استعمال نکنید اگر کسی زنا کرد و مرتکب زنا شد کفارش فقط توبه بزرگی هست اگر مجرد باشد صد ضرب شلاق باست صد تا بخورد و اگر متأهل باشد سنگسار اما این است که باید این زنا به وسیله گوا و شاهد شرعی به اثبات برساد یعنی چهار نفر شخص عاقل بالغ او را دیده باشد لغت و اوریان و روی عمل اینجوری گواهی بدن اینکه دوتا نامحرم در اتاق بودن این علامت زنا نیست جرم ثابت نمیشه و چهار گواه کامل و شفاف اونها رو ببینند و مجری قانون قاضی هست حکومت وقت هست مجری افراد نیستند هر که بیان خودشون حکم جاوی کنند و مردم به رکبار رو این نیست و قاضی وقت اگر کسی هم مرتقیب شد سعی کنید که پرد پوشی کنید و او را به توبه دعوت بدهی توبه کن و سای نکونی که اصلاح خداوند متعال مسئله زنا رو بسیار سخت گرفتن تا زود ها از هم نپاشن زندگی‌ها خراب نشن در قاتل دو تا گواه کافی هست اما در زنا باید 4 تا گواه باشد دو تا گواه کافی نیست و دیدن هم باید شفاف دیده باشد بدون پرده دیده باشد اگر دو نفر در اتاقی بودند اثبات نمیشه زیر یک پتو بودن اثبات نمیشه باید چهار گواد کامل کامل شفاف کامل ببینن که دخول صورت گرفته باشد بعد ثابت عزیز میشه عزیز اگر حاکم و امیر و خلیفت المسلمین کرد بر اون حد جاری نمیشود چرا؟ چون اون خودش مجری هست اون خود مجری قانون هست کسی دیگه نیست و حدیث دارین که از افراد شاخص اونها دیگه گناه انها رو چشپوشی بی کرید حالا کیا اون بی بی نا کس جورا انو بی بی, بی اون پس دنبالون نگر چون قابل روئیت بی نیست